بخش 27. توی قسمت آقایان دوتا دستشویی بود که روی یکیش بزرگ نوشته بود خراب است حالا آره اگر کسی نداند خیال میکند خلا با یک سیستم پیچیده کار میکند به نظرم اگر صاف و صادق بنویسند به علت بسته بودن راه آب موقتاً از پذیرش شما دوست گرامی معذوریم خیلی بهتر منظور را میرساند سمیمانه تر هم هست چپیدم توی آن یکی که خراب نبود. حیف که دستشویی نداشتم و یعنی جا به جا کار را تمام میکردم. به جاش چند دقیقه بی خودی سر پاوایست دادم. قاطی کرده بودم. میخواستم هوار بکشم نمیشد. اگر صدا رو میرفت بی بار و برگرد میامدند با یک اردنگی قایم ازم پذیرایی میکردند. هنوز چند دقیقه بیشتر نبود که مثل عقب ماندهها گارسون گارسان گارسان کرده بودم. عوض داد و حوار کردن سر کاسه نشستم و با سویچ موتور شماره اسکندر را پشت درکندم. کندم زیرش هم نوشتم لاله هیچ خوب نشد لاله جزء ناموس من به حساب نمی آمد. ولی از نقطه نظر اخلاقی کارم به هیچ عنوان درست نبود روی اسم لاله را خط خطی کردم و بهجاش نوشتم مهناز چه میدانم؟ شاید حتی این هم کار خوبی نبود چون در دستوی رستوران های سنتی مثل مال پارک سوراخی چیزی ندارد، می توانستم با خیال راحت اسم آدرس چند نفر دیگر را هم بکنم. ولی دل و دماغش را نداشتم. دست و درم اصلا به کار نمی رفت. پام هم که خواب رفته بود. وانگهی، تمام روز را هم که نمی شد سر کاسه توالت سپری کنم. توالت ها جاهای مناسبی برای حل مسائل ناموسی نیستند بلند شدم که بیرون بزنم متوجه کاغذ بزرگ پوستر در شدم لطفاً بعد از خروج در دستشویی را باز بگذارید لابد پیش خودشان فکر می‌کردند کسانی پیدا می‌شوند که قبل از خروج در را باز بگذارند این جملهشان از آن دستشویی خراب است هم مزخرفتر بود توی روشویی دو سه مشت آب به دست و روم باشیدم اصلا کیف نداد اینقدر پاشیدم پاشیدم تا بالاخره یک کیف جزفی داد سلانه سلانه رفتم پیش لاله سر سفره نشسته بود داشت با سبزیها شکل گل در میابرد. از حق هم نگذریم به سفید دست نزده بود چون قبل از رفتن علامت گذاشته بودم اگر چیزی کم میشد آنی میفهمیدم گفت معلومه تو کجایی؟ گلا برود. این همه وقت؟ کارم یک کمی طول کشید خیلی جدی این رو بهش گفتم که دیگر حرف و عدیسی پیش نیاید خیلی خوب حالا بیا بشین قضا از دن افتاد میلم پریده بود نانهاییم که ترید کرده بودم حسابی تخرمه شده بود اما از طرفی اگر نمی هم از کیسه میرفت. خوردن غذا قضا همیشه حجم قابل توجه از ناراحتی‌های من را کم می ولی باز معلوم بود که یک چیزی هم می شود. روح لاله هم خبر نداشت که از جیکا با سر در آوردم. خیالش از شرمندگی چپه کردن دیزی به این حال روز افتادم. هر بار زیچهش می نگاهش میکردم به کلم خطور میکرد کمی بهش حق بدهم. ولی نشد که نشد. اگر سر موضوع اسکندر هم بهش حق میدادم سر موضوع خودم دیگر هیچ حقی نمیماند. دختر تو روز روشن دو سره بار کرده بود و راحت نشسته بود آبگوشتش میکشید. حتی به عقل گردش نرسیده بود که لا من یکی رو وارد این کسافت ها نکند. شاید من برای حل بعضی مشکلات ناموسی به کار بیایم ولی برای درگیر شدن در یک ماجرای این ریختی هنوز خیلی کوچکم. اینقدر با غذا ور رفتم که صداش در آمد. چرا نمیخوری پس؟ دارم میخورم. کجا داری میخوری؟ یکیش که چپه شد اون یکی هم که بیشترش رو من خوردم. چرا دارم میخورم؟ نمیخوری همش داری بازی بازی می‌کنی. بعد سعی کرد که کاسه دیزی رو بیشتر طرف من بکشد که دیگر تاب نیاوردم. داد زدم. نمی‌خوام میگم. تو داری بازی بازی می‌کنی نه من. مفهومه؟ تو داری با همه بازی بازی می‌کنی. نمی‌خوام نمی‌خوام بخورم. تو بخور که چاکشی. روانی شده بودم. به خدا قسم این جماعت به هیچ چیه، هیچ اعتقاد ندارند. دهانم را تا آخر باز کردم که حداقل یک فوش چارواداری کنم. ولی جنم این یکی رو نداشتم با دهن نیمه باز ازم پرسید. چه تو؟ رفتی برگشتی جنی شدی؟ هیچ چی آقا با من چیکار داری؟ تو غذا تو بخور چاق شو؟ چی چرا تو گرفته؟ میگم تو چه شده پسر چرا اینجوری حرف میزنی آن؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ با کف دستم محکم توی پیشانی هم و گفتم من اینجوری با تو حرف نزنم من سگ کی باشم که اینجوری با تو حرف بزنم خاک بر سر من ببو کنن که اصلا با تو حرف زدم حالا هر جوری با اینکه دخترها کشته مرده مردهای قاتی‌اند ولی انگار لاله زیاد خوشش نیامد سفره رو کنار زد و گفت خب دیگه بالاخره آروم آروم بریم اگر میگفتم نه یا حالا زوده حتماً ای خیالات برش میداشت گفتم آره آره باید بریم موتورم امانتیه باید پس صحابش بدم چه تحفه هم بهانه کردم اوقات لاله حسابی گهمرغی شده بود لبش را رو روی دستمال کاغذی فشار داد و توی آینه جیبیش به خودش خیره شد که استقسش درست باشد بعد خم شد که کفشش را زیر تخت بردارد برای اینکه ازش عقب نمانم من هم فشنگی تا کمر خم شدم زیر تخت که از بد حادثه یک جفت آروقه فندوقی خشک زدم قربان یک جبخت، بخت الان چه وقت این گندکاری ها بود نمیدانم سرتاسر سر زندگی من پر از اتفاقاتی که از نیفتادنشان بی اندازه خوشوق از سب تا آخری که زده بودم هیچ کدامشان این همه بد موقع از کار در نیامده بود گفتم امدی نبود مربوط به یه مشکل گوارشی قدیمیه هیچی نگفت گفتم آروق و میگم. لام تا لامتوگا نزد گفتم تقریبا از بچگی دارم باش دست و پنجه نرم میکنم گفت راحت باش. اما بهتر بود که اصلا حرف نمیزد گرچه آرخ زدن در بیشتر موارد مربوط به مشکلی تربیتی است تا گوارشی، اما به هر حال راحت باش حرف خوبی نیست. سعی کردم کمی دیرتر از لاله خودم را پای صندوق برسانم تا در مورد اینکه دارد پول میز را حساب میکند خیلی خجالت نکشم. از روی قیمتهای منو که چرت که انداخته بودم، حساب همان دوتا تا دیزی آبزیپو و قلیان سر به جهنم میزد. حداقل حداقل 20 25 تومان برایش تمام میشد. پدر بیفولی بسوزد که اینجور به اعتماد به نفس و آدم گند گن می میزنند. قبل از اینکه کارش روی پیشخانه مغازه تمام شود چست و چبک زدم بیرون که مثلا موتور را روشن کنم وقتی که آمد بهش گفتم ببخشید فقط سرش رو تکاندم. میدانستم که بعد ازش تشکر کنم ولی چون گران در آمده بود ببخشید از دهنم پرید. باران نم گرفته بود. در اینکه باران برکت خدا صرفی نیست اما حتی وسط قهدسالی هم که باشد حداقل های موتوری آن را به چشم نعمت الهی نگاه نمی کنند چون وسط خیابان ویق و رمق آدم را می‌کشد کمی جلوتر که رفتیم دیگر نمیدیدم کجا به کجاست است طریق کلا کاسکت و آینه بغل و شیشه جلوی موتور شده بود خیس آب اگر دیده باشی چرخهای وسپا قد مال فرغون است و توی زمین های لغزنده قوز بالا می شود منم که آنچنان ای نیستم که بخواهید فکر کنید اما با همه اینها گاز میدادم گاز میدادم ها تنها دلیل مهمی هم که داشتم این بود که اعصاب آرام رفتن نداشتم لاله از پشت داد زد یکم آرومتر برو داد نمیزد چون پشت موتور صدا به صدا نمیرسد داد میزد چون آن عقب داشت دقم مرگ میشد خودم را به نشنیدن زدم من هر وقت که میلم بکشات گاز میدهم شمر هم جلو دارم نیست پر گاز میرفتم آرومتر آن. آرومتر دیوونه مگه زده به کلهت بابا کار یه بار میشه برو در واقع برای من که کار یک بار شده بود ولی چیزی که بود لاله ازش خبر نداشت رفتن حواسم خیلی بیشتر بهش بود گفتم که حتی ویراش هم نمیدادم که مبادا خدای ناکرده تاریش تاریش بشه اما حالا زده بود به رگ خریتم بعدم نمی اومد که چندتا تا حرکت ژانگولری بزنم که زهره و زنبقش بترکد مادام هم داشتیم خیستر می شدیم دوباره داد زد بزن بغره باز باز درا دارم خیست می شود. بزن بغره بارون بند بیاد دوباره را بیفتیم دروغ می گفت سنگ کرده بود گفتم بغر کجا بود؟ چه میدونم؟ این همه جا کدوم همه جا؟ همه جا خیسته آبه مگه نبینی؟ خیلی خب حالا چرا داری از این ور میری؟ کدوبری؟ داری میره به این من باید برم گلو بندک. این یک دهن رو بد نخاند داشتم میرفتم سمت قلعه مرغی حواسم یک قرام نبود وسط خیابان گرد کردم و از خط ویژه برگشتم عباس یه طرف از دور بزن آدم دم در این هر ثانیه یک جور حرف میزد دارم میرم گلو بندک. میدونم یه طرف از دور بزن باید از پایین بریم چشم چشم چارم جوری نبود که هر جایی که او ارد میداد بروم. برای همین راه خودم را کشیدم و رفتم. جلوترش توی یک چالهی به چه گندگی افتادم. کدی قیغاژ رفتم تا موتور دوباره صاف شد. حالا خود به خدایی شد که کله نکرد. من به درک دختر مردم ناکار میشد. دوباره رسیدیم پشت چهارراه ابوسعيد. سیمتری چهارراه بودم که چراغ زرد شد. خدا چراغ‌های آنجا را نصیب گرگ بیابان نکنند. یک چیز است که مسلمان نشنود کافر نبیند. اگر سبز باشد که هیچ ولی اگر قرمز باشد دستکم کم 6 دقیقه باید اتراق کنید بلکه دوباره بهتان راه بدهد روی همین اصل صبر نکردم دستم را رو روی گاز گذاشتم و تا قبل از اینکه کاملا قرمز شود یا نصیب و یا قسمت مثل یابو الفی چراغ را رد کردم آن اتوبوسی که آن روز با ما شاخ به شاخ شد آخرین خاطره مشترکی است که من با لاله داشتم Thank you.